فصل هم وقتی دوست بی است آیا شما به تلپاتی اعتقاد دارید من دارم دوست بیشعوری داشتم که هر از چندی تلفن میزد تا خبرای بد و همه چیزایی که براش آزارنده بود به من منتقل کنه همیشه می‌دونستم که کی تلفن خواهد زد و چند دقیقه قبل از به صدا در اومدن زنگ تلفنش بی اختیار گاز مده ازم خارج می شود. آلیس دوست چند آدم بیشعور هیچ کس دوست نداره قبول کنه که یکی از دوستانش ممکنه بیشعور باشه اما چنین چیزی هست متاسفانه دنیای دوستی بیعب و نقص نیست این دوستان بعضی وقتا مدتها بعد از آغاز دوستیشون با ما به بیشعوری مبتلا می شن. بعضی وقتا بیشعوریشون گهگاهیه و مدتها طول میکشه تا برای همه روشن بشه که بیشعورن. یا ممکنه چنان بیشعور آب آبزیر کاه متشخصی باشن که ما هرگز به بیشعوریشون مشکوک هم نشیم. بنابراین پیش از آموختن روش های زندگی با دوستان بیشعور باید اصولی رو معین کنیم که بر مبنای اونا بتونیم تشخیص بدیم که دوستان ما با چه شرایطی بیشعور محصوب میشن. هر یک از این موارد نشانه گویایی از بیشعوری دوستان ماست. یک، از شما انتظار دارن همیشه به خاطر داشته باشید که دوستی با اونا افتخاری بزرگ محسوب میشه. افتخاری که باید هر هفته برای حفظ اون رنج و زحمت تازهی تحمل کنید. دو، دوستیشون هیچ قاعده و قانونی نداره به جز یکی. نفعی به حالشون داشته باشین. دوست واقعی حق نداره به اونا و این قانون نانوشتشون بدگمان بشه سه، اونا حق دارن که هر قاعده ای رو به مساله خودشون تغییر بدن شما حق ندارید چهار، این حق براشون محفوظه که هر زمانی و به هر دلیلی که صلاح بدونن با شما تماس بگیرن از قرض گرفتن پول تا نگه داشتن بچه هاشون و از پنهان کردن اونا از چنگال قانون تا گرفتن کلید های خونتون اگه براشون دوست واقعی باشید، هرگز نباید بپرسید که به چه حقی این خواسته ها رو دارن و البته چیزی هم از اونا نباید طلب کنید. پنج حق دارن که تمام مشکلات و بدبختی هاشونو با شما در میون بذارن و انتظار دارن که در نهایت و و همدردی با اونا برخورد کنید. مهم نیست مشکلات چه باشن؟ به هر حال از شما انتظار میره که در کنارشون باشین و دائم به اونا اطمینان بدین که کاملا حق با اوناست. اما اگه شما مشکلی داشته باشید ازتون انتظار میره که اون رو نزد خودتون نگه دارین و در چنین لحظات پر ازتراوی به سراغ اونا نرید. شش. شما باید از تمام دشمنان اونا متنفر باشید. اگه بخواید با کسایی که از اونا خوششون نمیاد و یا ترکشون کردن دوستی کنید، پاچتون رو خواهند گرفت. هفت باید همیشه ستاگش، مهربانی، حمایت و دلگرمی به پاشون نسار کنید. هر چیزی که در محدوده ارادت و هواخواهی مطلق نگنجه، به پای سست انصری و بیوفاییتون نوشته میشه. هشت هرگز نباید به خاطر چیزی از اونا انتقاد کنید هر گونه بحثی درباره اشتباهات احتمالی اونا اعتماد به نفسشون رو دار میکنه و بنابراین باید از اون چشم پوشی کرد اگر با در نظر گرفتن این ملاک ها باز هم درباره بی‌شعوری دوستان خودتون شک دارین در نظر بیارین که سگ و گربه خونگیتون در حضور اونا چگونه رفتار میکنند. اگه خودشون رو زیر خ و پرتاب پنهان میکنن این امر میتونه نشانه قابل تعملی مبنی بر بیشعوری دوستتون باشه اگه روزی از بیشوری دوستتون مطمئن شدید چند مرحله است که میتونید هنگام نیاز انجام بدین یک قبول کنید که با وجود چنین دوستی نیازی به دشمن ندارید اگه دوستی اینه بدون دوست هم میشه زندگی کرد جدی باشید به اونا بگید تنها دلیلی که گذاشتید اینطور و وبالتون بشن اینه که خواستید با چنین شکنجه‌ای کفاره گناهانتون رو بدین یا در حال جمع‌آوری مواد اولیه برای کتابی هستید که می‌خواید درباره آدمای به شدت عصبی و روانی بنویسین دو به خاطر داشته باشید که دوستان واقعی برای دوستی قانون نمیگذارن اما حد و مرز معقولی قائل میشن اینکه یک ماه اتومبیلتون رو به کسی قرض بدید عاقلانه نیست مگر آنکه در هنگام برگرداندن کرایه اون رو بپردازه و باکش رو هم پر بنزین کرده باشه سه با اونا بگین که اگه میخوان با شما به عنوان روانپزشک یا روانکاو برخورد کنن باید هزینه رو ساعتی محاسبه کنن چهار شیر فهمشون کنین که حق با افرادیه که نام اونا را از فهرست دوستان سمیمی و حتی عادیشون خط زدن و اگر هنوز در فهرست دوستان شما وجود دارن به این خاطره که لیستی به نام فهرست دوستان مزخرف دارید. پنج به اونا بگین که مدت هاست در حال اندازه میزان قرولندشون هستین و به زودی میتونین اسم خودتون رو در کتاب های جهانی گینس به عنوان کسی که بیشترین قرولند رو از سوی دوستش تحمل کرده ثبت کنید. شش، فرار کنین و هیچ آدرسی هم از خودتون به جان نگذارید. البته اینکه که هر کدام از این پیشنهادها تا چه حد پاسخگوست بستگی به خصوصیات هر بیشعوری داره. همچنین به خاطر داشته باشید که اجرای بعضی از این پیشنهاد ها ممکنه باعث واکنش های تندی در حد جیغ چشیدن، دادن نسبت های ناروا به والدینتون و پرواز ناگهانی و مستقیم اشیاء به سویتون بشه اگه چنین اتفاقی روی داد اقب برید و نشون بدید که صدمه دیدید بعد به دوستتون بگید که تا زمانی که مزرد خواهی نکنه با او صحبت نخواهید کرد اگر شانس داشته باشید او بیشعورتر از اون خواهد بود که چنین کاری بود.